بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر العباد الذين يستمعون القول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان عزیز و اگران قطر موحد و خواهران موحد یکتا پرست السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو برنامه چهاردهم عقیده در قرآن و سنت مفهوم لا اله الا الله هست ببینین دوستان عزیز وقتی میخواهیم که یک انسان واقعی یکتا پرست باشیم اگر شما قصه های تمام پیغمبرا را در قرآن بخوانین کل پیغمبرا در قرآن ازی مشان فقط به می خاطر این کلمه فرستاده شده بودند که لا اله الا الله چرا چرا مفهوم اصلی وقتی که ما می کلمه طیبه چی معنا کلمه طیبه یعنی ای کلمه است که اگر انسان مفهوم از را درست درک بکنه از تمام چیزهای زشت، تو را از کفر پاک میکنه تو را از شرک پاک میکنه تو را از نفاق پاک میکنه تو را از ریا پاک میکنه تو را از تمام بدبختی های فکری پاک میکنه به شرطی که مفهوم از ای کلمه فامی شود اگر ای اگر ببرتان بگویم شاید خفه شوین خو خفه نشین ابو جهل، ابو رحب، امیه ابن خلف و دیگه مشرکین از ما و شما کردن مانای این کلمه را بسیار خوب میفامیدن بسیار دقیق میفامیدن چرا اونا خوب و دقیق به بخاطر از که اونا تا روزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این کلمه را نگفته بود برشان خوب دوست پیغمبر بدن و دشمنی خشان کتی این کلمه شروع شد چرا دشمنی کتی پیغمبر کردن؟ بخاطر ازی که مشرکین یک عادت دارن که اونها در عبادت الله جل جل و در قانون الله جل جل مخلوقات شریک کردن عبو کسی بود که از پیدا شدن پیغمبر سلم بسیار خوشحال بود و اولین کسی که به پیغمبر سلم شیر داد اولین الله علیه و سلام مادر رضاییش اولش حلیمه نبود اولش سوایبه بود و کنیزه ابو بود مخالفتشان از کجا شروع شد؟ مخالفتشان با پیغمبر روز شروع شد که پیغمبر استاد شد در سوق عکاز و بر مردم میگفت که ایوه الناس قول لا اله الا الله مردم عربای بسیار پخته بودند و مفهوم از این کلمه را به بسیار پختگی میفهمیدن. چطور میفهمیدن؟ اینا میفهمیدن که کلمه از دو بخش گرفته شده. دو کلمه در اولش است و دو کلمه در آخرش است. لا اله ها دو کلمه ال الا الله دو کلمه اینال اینی دو کلمه اول که است لا اله اول نفیه میکنه نفیه میکنه و دو کلمه دیگه اثبات میکنه دو کلمه اول لا نفیه میکنه چی مانه؟ نیست اله وقتی پیغمبر گفت لا نیست اله ایلا... هیچ معبود قابل پرستش هیچ معبود مستحق پرستش پس به اساسی که یا زبان عربی رو خوب می فهمیدن, فهمیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام معبودان باطل زینار ای سیزد و ای و ایمانات و ای و, ای و بعضی از اینا ملائکه ها را پرستش می کردن بازی پیغمبره را پرستش می کردن بازی مثلا درخت را پرستش می کردن بازی ها سنگ را پرستش می کردن بازی ها جن را پرستش می دید که این کلمه کل از این معبودาน Photoshop چی کرد؟ نفیه کرد یعا الله اثبات کرد مستحق عبادت کی است؟ یک ذات است الله جل جلو است ابوجهل جهل و ابو شش ششتان گفتن خبرداری که پیغمبر چی میگه محمد چی میگه محمد میگه صلی الله علیه وسلم که هیچ این که ما و شما در اطراف کعبه به یه ایمان داریم ای لات و منات و اوزا و ای جنها و بعضی ها ملائکه ها را بعضی حتی پیغمبر مجسمه ای صالح مجسمه ابراهیم علیه السلام پرستش میکردن مجسمه اسماعیل علیه السلام پرستش میکردند قبرهای بعضی از صالحین پرستش میکردند در حبشک وقتی که احادیث صحیح بخاری هست که رفت مثلا ازواج مطهرات اول آوردن بر پیغمبر صلی الله علیه و که اونها قبرهای صالحین خود اینها عبادتگاه جور کردن و در اونجا رکو برش میکردن سجده برش میکردن عبادت میکردن نظر بریش میبرن قربانی برش میکردن پس اینا با صدها قسم معبودان باطل وجود داشت. این کلمه تمام از اینها را نفیه کرد. لا اله چی مانه؟ نیست هیچ معبود قابل پرستش. هیچ مخلوق قابل پرستش نیست. خواه اینمی مخلوق ملایکه باشه؟ در آیات شریف است که بعضی از این هم ملایکه ها را پرستش می هم نفی کرد. پیغمبر باشه؟ نصاریه ها عیسی علیه السلام را پرستش میکردن مشرکین قریش اینا ابراهیم و اسماعیل علیه السلام را پرستش میکردن در داخل خانه که اما مجسمه هایش نمونده بدن تصاویرشان رو مانده بودند. بعضی ها جن را پرستش میکردن پس نیست هیچ ملایکه قابل پرستش الا الله و از الله. اگر کس ملایکه را پرستش میکنه معبودش معبود باطل است حق نیست باطل است ولو که ملائکه است مخلوق است پیغمبر را پرستش میکنه معبود باطل است پیغمبر باید پرستش نکنی دوستان خدا را پرستش میکردن معبود باطل است سنگ پرستش میکنه معبود باطل است چوب پرستش میکنه معبود باطل است جن پرستش میکنه معبود باطل است پس آیت کلمه طیبه آمد که لا اله نیست هیچ مخلوقی ولو که ردبیش هر قدر بلند باشه مستحق عبادت نیست ایلا الله اینجا استثناه هست غیر از الله جل جلجاله پس اینجا وقتی که اینا آمدن ایره فاهمیدن که بالا در قسمت اول نفیه کردن ببینین، بعضی از مشرکینه که ملاکه ها را عبادت میکردن، دلیلش چی هست؟ بعضی از را پرستش میکن دلیلش چی هست؟ پیغمبر را پرستش میکن دلیلش چی هست؟ بعضی از مشرکین مشکلشان ای است که جن عبادت میکنن، فکر میکنن که این ملاکه هست. ای پا شما دقیق متوجه نشده باشد بعضی از کسا هستن که امی رجال الغیب یا جنها خدا در شکل یک شکل خوب زیبا پیدا میکنه پیشگان تا انسان های جاهل میه یا در خوش یا در بیداریش میه و برازی خدا نشان میتن این انسان جاهل فکر میکنه ولی ملائکه هست آیا تو پیغمبر هستی پیشتو مالاکمه بر تو وحی میره؟ یا فکر میکنه ای کدام شهید است، یا کدام دوست بزرگ است، یا کدام ولی هست؟ در حالی که ای جن، ای شیطان در این لباس خدا بر عزیز زده و پیش ازی آمده و ای رفریب بسیاری از مشرکین بعضی از جنها را پرستش میکردن و می گفتن یا ملائکه ها هستن و ما این ملائکه ها را پرستش میکنیم. پرستش اگه ملائکه باشه و یا جن باشه کلش حرام و ناروا و غلط است. سعی کنین ایگب ما از کجا گرفتیم و در کجا هست که آل ایگب در کجا هست در آیت قرآن میخونیم اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و یوم یحشرهم جمیعا الله جل جلاله روزی که کل از نارا جمع میکنه حششان میکنه ثم یقول للملائکه باس الله جل جلو بر ملائکه ها میگه اها اولای ای کانو کانوا یعبدون انی مردما آیه این مردما شما را عبادت میکردن یا خبایی فکر بدن که ما ملائکه ها را عبادت میکردیم آیا عبادت ملائکه درست است؟ باطل است. ملائکه حق نداره که کسی عبادت بکنه. این مشرکین دو عیب داشتند. یکی که مخلوق عبادت میکردن. دوم ای که جن به نام ملائکه عبادت میکردن. ملک پیشم آمد. کجا ملک پیشت آمده؟ شیطان پیشت آمده. قالو ملائکه ها میگردن سبحانکه با کس بروردگاه انت ولینا من دونهم تو ولی ما هستی دوست ما هستی بغیر از اینا بلکه آنها عبادت جن بلکه اینا عبادت جن ها را می کردن. اینا اینا ما ارتباط نداشتن چرا اگر کسی کت ملائکه ارتباط داشته باشه برای ملائکه ملائکه مثل که حضرت جبریل امین علیه السلام قرآن به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آورد هیچ وقت ملائکه بر شما که بر من عبادت بکو یا بر من سجده بکو یا از ما چیز بخوای چون ملائکه ها مخلوقات معصوم الله جل جلاله هستن و اگر کسی درباره ملائکه ها بدگویی میکنه و اشتباه میکنه و بعضی آد مثلا اسرائیلیات بعضی آیات مثلا تهمت های را سر هاروت و ماروت و سر بعضی ملائکه ها میکنن یک کلش ملائکه حبا الله جل جلاله میگن که قالو سبحانك انت ولينا پاک پروردگار پاک است ما تو را انت ولينا تو ولی ما هستی دوست ما هستی من دونهم بغیر از نا بلکه كانوا يعبدون بلکه اینی مردومها عبودون الجن اینا جن عبادت میکردن اکثرهم بهم مؤمنون اکثریت این مشرکا با کیمان داشتن با جنها ایمان داشتن چرا به خاطر که جن جن ها اینا را فریب میداد. جن در لباس لباسه ملائکہ پیشش میهماند بازی میخاست کہ سر ما سرمایک دوست خدا آمد یک کس آمد یک صدقہ دو صدقہ سه صدقہ که سر تو صدا کرد اول تو خدا بشنست که تو پیغمبر هستی که سر تو وحی به نه خاتم النبوه خاتم النبیین پیغمبر صلی الله علیه و آخر آخر پیغمبران بود خلاص پیغمبری خلاص شد پس تو پیغمبر نیستی پس کسی که سر تو آمد این ملائکہ نیست که پیش تو بیاید اگر بر توپیه او چه شود در حقیقت خی ملائکه وحی میره تو خی پیغمبر شو دوای پیغمبری کرد پس اینجا چه ملائکه میگن که اینا اکثرشان جنها ها اینا را فریب میداد از این خاطر بیچاره فکر میکرد که یا ملائکه است یا کدام پیغمبر است در حالی که پیغمبر وقتی که رحلت کرد رفت از این دنیا از این دنیای ما شما ختم شد ما پیغمبر کسب کرده پیغمبر در زندگی نمدو كاتش گپ و قصه و ش ذهنم میکنه، ای به چرا فکر میکنه خیلی ولایت میشه فرق کامل مدد بیشی یا ملائکه هست یا پیغمبر است، یا کلام دوست خدا هست. از این خاطر ایران و غمراهی ای میکشه و می میرسد به پشت او بر ازو رکوب سجده میکنه و مردم میگن بر ازی رکوب بکو، و سجده بکو، چی بکو؟ دیگه از این چه. الله جلّه جلاله در قرآن ما میگه که ای کسانی که ای را میکنن و یا ما احشرهم ثم یقول للملائكة وقتی که حشر میکنه تمام اصلا باز برای ملائکه میگه که اها اولی آیا ام مردما ایاکم کانوی یعبدون اینا شما رو عبادت میکرد چرا الله جل جلو ای سواله در روز قیامت از ملائکه ها میکنه عین سوال از حضرت عیسی علی سلام هم میکنه و هر کس که عبادت شو الله جل جلو در روز قیامت رو استاد میکنه پیش ازی که ای کسایی که عبادت میکردن پیش ازی اما امام رهبرش استاد میکنه و می که ام کسی که تو می که عبادت میکردی آیا اونایی که دوستایی واقعی الله هستن، پیغمبر هستن یا ملائکه هستن یا دوست الله هستن، اول از الله پرسان میکنه که آیا تو براز اینا گفته بودی که عبادت بکو، و آیا اینا شدره عبادت میکردن؟ پس اونا اقرار میکردن، میکردن که بروردگار این و اینسان مفسده هست که ما برازی ایچ وقت نگفتیم. پس و ما هم جميعا. روزی که تمامی از اینا خوب خوبیو آیت قرآن بخارینت سبحان الله کل عقیده در قرآن است و یوم یحشروهم جمعیه و روزی که حشر میکنن تمامی از اینا را سمه یقولو باز میگه للملائکتی بر ملائکه ها اهاولا ایاکم کانو یعبدون آیا اینا همو کسای هستن که شما را عبادت میکردن قالو سبحانک میگن که اپروردگارا پاکی مرترست انت ولینا من دونه یا دوستا ما نیستن یا دشمنای ما هستن یا مشرک هستن یا دوستای ما نیستن دروغ نام ما را بد کردن و میگه ما ملیک ها را بلکه الجن بلکه مردم ها عبادت جنه می کردن جنهای را فریب دادن جادوگرا اینا را فریب دادن مردم های فاسق و فاجر منه اکثرهم هم به هم مؤمن اکثرشن به جنها به شیطانها اینا ایمان داشتن فاليوم الله جل جلاله هذا لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا د اليوم هیچ کس بعضی برای بعضی دیگه هیچ نه نا نفع میرسونه و نازل و انا نقول للذين ظلموا بر کسایی که ظلم کردن ظلم به حق خود کردن ظلم در حق خود کرده بر از چی میگیم فالیومان لایملکو بعضم لی بعضن بعضکم لی بعضن نفع زوق و نه ضرر و ناقول للزیر زلمه زوق عذاب النار شما که خودتان در حق خود ظلم کردین کردن قاییرا وردن که ملاک اس ما ایرادات میکنیم این دوست خدا اس ما ایرادات میکنیم ای ولی خدا اس ایبرم میکنه میکنم ایبرم ما مشکل کشای ماست مار میگه که خب وقتی که تو ایکارا کردی دیگه چی اس زوق و عذاب النار التي كنتم بها تكذبون بچشین عذاب دوزخ که شما به این تکسیب میکردین چی مشکلی داشتن؟ مشکل شانمی هست که اینا غیر الله را عبادت میکرنند لا اله الا الله را درست قبول نمیکنن بعض از مشرکین ملیکه ها را عبادت میکردن لکن ملیکه ها در روز قیامت میگن که پروردگار را مخ کس را نگفتیم بیا ما را عبادت کو این جنها هست که اینا را فریب میده بدروغ می لباس ال خدا نشان میده که یا فکر میکنن که ملائکه ها صلا مسافت که ملائکه های ارزش داریم در حال حالیکه ارتباطشان که ارتباط شن کت کی است که جن هست و, و شیطان است کی بود از جن بود که شیطان هست بلکه نمی عبادتن جن بعضی از مشرکین دیگه پیغمبر ها را عبادت میکردند پیغمبر ها را عبادت بله به اساس کدام دلیلی میگن که مشرکین پیغمبر ها را عبادت به خاطر زیکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره مائده شما آیت شریف 116 را بخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال الله وادكن وقت را که الله جل جلاله میگه یا عیسی یا عیسی ابن مریم در روز قیامت یعنی yani محاسبه کل از اینا در روز قیامت میشه و الله جل جلاله بر ما از روز قیامت برسان میکنه سوال قبلی از ملائکه بود سوال دیگه ملائکه کسایی که به نام ملائکه ها که می ملائکه برنامه وحی آورده و این ملائکه فر من خبر آورده مثلا بعد از زمان پیغمبر صص بعد از عصر نبوت بعد از اینکه خاتم النبی آمد و قرآن کتاب ابدی شد باز کسایی که می ادعا را میکنه مکات ملائکه ها با ملکه ها عبادت میکنن او رحم الله جارجو بایان کرد و کسانی که عیسی علی السلام مجسمه اش جور کردن. صایبیا در مقابل مجسمه عیسی مسیح میرن سجده میکنن، رکوع میکنن و او را پروردگار خود ساختن، اعلی یزب خدای خود ساختن. الله جل جلاله به خاطر که اول امینارا رسوا کنه. اول از خودی عیسی علیه السلام پرسان میکنه در روز قیامت و ایات شریف میگه وقتی که ك... عیسی علیه السلام پرسان شد و عیسی علیه السلام اظهار بیزاری کرد از این مردما خلاص دیگه اعوذ بالله من شیطان الرجیم و اذ قال الله و کن وقت را که الله می گوید یا عیسی یا عیسی بن مریم ای أي عیسی پسر مریم اانت قلت للناس ناس اتخیذونی و امي آیا تو بر مردم گفتی اانت عیسی عیسی لسان در روز محشر استاد میشه و الله جل جلو اسفش فرصان می که یا عیسی بن مریم ای عیسی پسر مریم اانت قلت لن تو گفتی. برای مردم اتخذونی که مرا بگیرن و امی و مادر مرا الهاین دو معبود دو اله؟ اله. اله، اله، اله، اله. تو الہ سر لا الها الہ الهاین تو گفتی که مرا دو اله بساز دو معبود بساز در حالی که تو اومدی برای اینکه به مردم بگی که لا الها الا الله انت قلت للناس اتخذونی و امی مادر مره مره و مادر مرا و مادر ما دو اله بگیرین من دون الله بخیرز الله جل جلاله نیفتن عیسی اله هست مریم اله هست حالا متاسفانه کسان نامخده اله همی مانه تلمه کفری را اینا علی تو گفتی من دون الله و غیر از قال قاله عزتی سلام چی میگه باست در روز قیامت در روز حشر سبحانک پاکستی ها پروردگارات را ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق شایسته من بود که چیز را ما بگویم که او ما او حق نداره. ما چطور من منحیث یک پیغمبر معصوم گپ را بزنم که ما او حق ندارم و ای او گپ را که او حق نیست این کنت قلته فقط علم تا بروردگار بر عزتی سالی سلام میگه مثل ما یکنون لی ان اقول برما شایسته نیست که مامای گفتم مالای صلیبی حق چیزی که من حق ندارم این کن تو قلتو باز عذر خدا پیش میکنم میگه پروردگارا این کن تو قلتو فقط علم تا اگر ما امی گفت زشتا میگفتم تو خب میفهمیدی او پیغمبر معصوم است و یا بردن ای نمیزند هیچ وقتی سال اسلام برای کسی نگه بین برمار رو کوس اجرا و عبادت بکنید هیچ وقت محمد سالی بر من بین رو کوس اجرا و عبادت بکنین. و هیچ وقت کدام دوست الله انسان با تقوا هیچ وقت بر کسی نمیگه بیا بر من رو کو یا سجده بکو یا برام منظر بکو یا از من کمک بخوای از من چه بخوای از عیسی علیه عزم... این كنت وقلته فقط علمته پروردگاره اگر من ما... گفته باشی میگه با. تو که میفهمی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی پروردگارا آنچه که من ما... در نفس خود داشتیم کلش تو می فهمی. خودت ذات با خبر هستی که من این کار را نکردیم ولی اعلم ما فی نفسی در حالی که محاجز هستم آنچه که تو می و را من میفهمم می فهمم اینکه انت علام الغیوب پروردگارا یقینا که تو ذات عالم غیب هستی در اینجا هست که مشرکین این مردم بدبخت ذالک عیس ابن مریم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فأيكون بالآخرة مزيد مشركين قرائش عادت داشتن؟ مشركين قرائش عادت داشتن كي مجسمهاي إبراهيم و إسماعيل عليهم السلام السخطة و بهو إبادات مكردن صاحب رحيق المختوم الرحيق المختوم يعني كتابه در سيرات ایچی قسم قسم میکنه میگه وَكَانَ فی جوف الكعبه الْكَعْبَةِ اصنام و صور. میگه در میابین کعبه بطها و تصاویر بلد منها سنمون على صورت ابراهیم و سنمون على صورت اسماعیل میگه در اونجا یک بط بچیری ابراهیم علیه السلام بود و یک بط دیگه بچیری بط اسماعیل علیه السلام جور کرده بودن که ابراهیم مسیح اسماعیل والله و بیاده همال و در دسته بعضی چیزها بود و محیت هذه الصور ایدن یوم الفتح و ای تصاویر هم محوا کرده شد در روز فتح مکه رسول الله ای را هم از بین برد شما ببینین الرحيق المختوم صفحه 24 خب پس یک مردم چی میکردن؟ مجسمه از اینا رو ساخته بودن برای از اینا عبادت میکردن صاحب انوار القرآن چی میگه؟ میگه در دوره سلطه مشرکان خانه کعبه و چنان عبادتی که خداوند جل جلوهو در آن بر وجه مشروع مورد تعظیم قرار گیرد آباد نبود بلکه کعبه با حرکات سبک و بیمعنای چون اشپلاق زدن و کف زدن آن هم به نام نماز ارسکای حرکات وقیهانه آنان شده بود خب آدی رفا که اینا خانه که برای هم جای سشت ساخته بودن پس وقتی که این معبودان باطل اینا عبادت می طبعا این مشرکین به همراه لا اله دشمنی میکردند دوستان عزیز از ای که وقتی برنامه ختم شده باقی مانده ای درس در برنامه بعدی خدمت شما دوستان عزیز تقدیم خواهیم کرد تا برنامه بعدی شما را برقی زلجلال مصباریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته